حکایت مردکی را چشم درد خواست پیش بیتار رفت که دوا کن بیتار از آنچه در چشم چهار پای میکند در دیده او کشید و کور شد حکومت به داور بردند گفت بر او هیچ تاوان نیست اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی مقصود از این سخن آن است تا بدانیم که هر که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آنکه ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رأی منسوب گردد. ندهد هوشمند روشن رای به فرومای کارهای خطیر، بور یا باف وگرچه بافنده است. نبرندش به کارگاه حریر،